بله همانطور که در خبرهای روزهای گذشته شنیدیم دالتون ها یا همان سبرابدر معروف جیبور و کفزن پای تخت برای هجدهمین بار در حین جیبوری دستگیر شدن در همین رابطه مساحبهی داریم با جناب آقای جناب سرهنگ کاشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی دالتونیاتی برنامه تاماره و در جریان جزیات بیشتری از این پرونده قرار بده. بله. جام سلام بفرمایید. بله, بله منم سلام عرض می کنم این ای پیروزی بزرگا بله. به مللتی شریف ایران و همکارانم هم در نیروی انتظامی تبریک و تهنئه عرض می کنم. پیرهنگ بهمن بله. تموم شده. پیروزی بزرگ چیه دیگه؟ بله. نه خیر همین دستگیر شدن این برادرانی دالتونا میگم. ها ها خسته نباش. سلام. عرض. میخوای بگم همکارا شرود ورزشکاران دلاوران اینا بذارم برایت. نه نه خیر آقا نیازی نیست ما وظیفمون رو انجام دادیم هر چی خسته نباشید واقعا سرنگ یکم بله. حالا از اینا برامون بگوی دیگه کی هستن چیکارن چند سالشونه چی بله ببینید اینا خب. سه تا برادرن که خب. بزرگترینشون جعفرست وسطی احمدا کوچیکم جواده یعنی اینا واقعا با هم برادرن سرنگ ها بله متاسفانه برادرن جا. ولی خب ما این سری اول تونستیم خب خب جعفر یعنی برادر بازارگره بگیری ایشون 17 بار قبلا دستگیر بودا. آه. الان هم داشت زندانش ها میکشید که بهش مرخصی دادن و متاسفانه مراجعت نکردن با برادرهاش دوباره شروع به شرارت کرد اوه, اوه یعنی همین الان این حکم قبلیش هم تموم نشده؟ نه خیریشون همین الانش هم زیر حکمه بله. این جفر چند سالش هست سرنین فکر کنم پیر باشه دیگه نه؟ نه خیر ایشون فقط بیس و هفت سالشه جان؟ 27 سال بله اینجوری باشه که از زایشگاه آوردن تام بله. زندان تعویض دادن رفتن که بابا ب... بعد بعدا میگم متاسفانه ایشو خیلی سابقه دارم و ظرا يعني زنداناتون هم عالیه نا خیلی سمر بخشن بله. شبون میمخت تعویض میگیرن اصغر گافگوش تعویض میدن از, می از زندان مال سیستمه قضایی ام ای بعدم هم این که ما نمیتونیم آدم ادم ارا عوض کنیم که عزیزم من... آ طرف میره زندان بعد به مرخصی میگیره میاد پروژه های خلاف ناموندهشو بله. انجام میده برمیگرده این شد کار اخر های. ما میبینید قانونه آقا کاریش نمیشد کرد این... بله قانون دیگه. بله. سن یعنی من فکر کنم این جعفر هنوز پاش نرسیده به زندان رفیقا رو جمع میکنه تو سلولش میگه اول آهنگمو بذارید که آهنگ آه چی آهنگ چی چی است آقا جن زندان آه... از این کار کرد. چی میگی شما. با... الان هم کارام میخوام اون آهنگ رو بذارن تا متوجب بشی آهنگ چی. آه چی گرمی؟ هم کارو گرامی و آهنگ این آقا جعفر رو بزاری. بله. بیا <تصال> <تصال> <تصال> یعنی چیچی آقایانی دنبال پلیسیست جل دیسی نه اینگونه جل چیچی هر میذاری تو زشته آقا قبلا ما برایش آنیم متاسفم دنای بیا و راد شیامان گل میذارم ولی جعفرم جو دوباره داره وصلش چیم میکنی گود بای پارسی میگیری بیاد میروم خیلی بابا کشک توجهی تبادل شما شوی دیگر سر دیگر و جفری دیگر کودوم دیگر نه پا کودوم است کو هنگام متوقف مشکل دارن هم نفش کن میکنی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 دوستولوی اردشولم بیبری نه. دهی پدری کوت. جگوت بای پارتیه دافره. جگوت بای پارتیه دافره. جگوت بای امشب دفر کم جینه حالا امشب من شدم دیده ولی دفر تیرا جینه حالا همه میدن شماره از قلب چیزی نزد و خماره آخره شب همه زدن تجرید دفر بگو بینم تیرا پکری مثل این چه به هم زده دفع نکن اون کار بری.